ارز سلام و ادب و احترام به مطالعه کننده عزیز کتاب آینه های زلجلال. سپاس از اینکه با خواندن این کتاب نگاهتان با شنیدن اشعار این کتاب گوشتان را به ماهدیه می کنید و لحظات با ارزش عمرتان را با کتاب آینه های قسمت می کنید. اگر بخواهم از سابقه سرودن شعر بنویسم باید بگویم که با انایت و لطف اهل بیت علیهم السلام بعد از اربعین سال 1393 بدون هیچ استادی شاعری را با قزلی با موضوع حضرت مهدی اجلالله شروع کردم. و به همین دلیل شاعر شدنم را از طرف اهل بیت علیه السلام میدانم که قطعا هم همین است چون کمی مداحی می کردم ابتدا موضوع اشعارم مذهبی و آیینی بود که هم دوست داشتم قدمی در راه اهل بیت علیه السلام بردارم و هم اگر مجلسی میخواستم خواستم کنم و شعری زیبا پیدا می کردم و شعر دیگر شاعران به دلم نمینشست خودم دست به کار می شدم و شعر می نوشتم به دلیل اینکه استادی نداشتم تا ایرادات اشعارم را برطرف کنم با اینکه سعی میکردم ردیف و قافیه داشته باشند و ابیات اشعار از موضوع خارج نشند باز هم اشعارم با مشکلاتی روبرو بودند تقریبا از زمستان سال 95 تا به حال موضوع اشعارم به آشغانه تغییر کرد و باز بدون استاد اشعاری را نوشتم و اگر استادی را پیدا می کردم با کمک گرفتن از اون شخص ایراداتم را برطرف می کردم. در صفحات مجازی استاد بیگی بزرگوار را پیدا کردم و ایشون کمک زیادی در حق بنده کردند و شعرم را با راهنمایی‌هایشان بهتر کردند و محبت کردند من را در کارگاه ربایی که داشتند شرکت دادند. نتیجه شرکت من در این کارگاه کتابی شد شامل مجموعه رباییات از هشتاد شاعر معاصر ایران و افغانستان که به کوشش استاد جلیل سفربیگی، و انتشارات زانا به چاپ رسید و جلد اول آن در بهمن ماه سال 1397 منتشر شد جلد دوم این مجموعه نیز توسط انتشارات باشور در شهری ور ماه 1398 منتشر شد اولین کتاب شعرم با نام یلداتر از یلدا، در بهار 1398 با تیراژ 100 جلد و 74 صفحه که شامل 65 قزل با موضوع عاشقانه باشد توسط انتشارات متخصصان به چاپ رسید. وقتی نام اولین کتابم را یلداتر از یلدا گذاشتم بعد از چاپ بنا را بر این گذاشتم که اگر باز هم کتابی منتشر کردم، نام کتابهای بعدی را هم یلداتر از یلدا بگذارم. دومین کتابم باز هم با نام یلداتر از یلدا اما این بار مجموعه ربایی در تابستان سال 1399 که شامل 142 ربایی عاشقانه بود، با 85 صفحه توسط انتشارات نوآوران دانش چاپ و منتشر شد. ارتباط, با, ارتباط با, مؤلف. با, مؤلف. با مؤلف. خوشحال میشم که همراهان کتاب یلداتر از یلدا بنده رو در صفحات مجازی هم همراهی کنند و با من در ارتباط باشند. آدرس وبلاگ مذهبی که اشعار مذهبی و مدائحی هایی که توسط بنده اجرا می شود به نشانی زیر میباشد یاحسنویاحسین.blogfa.com y a h a s a n V A H O S E -I, I N Norte B L O G F A -N -O -T -E C O M ولی که کانال تریگرامی اشعار آشغانم t.me slash mj بستانی t نقطه slash یا underline b او S -t -a -n -i. ما را در اینستاگرام هم می توانید جستجو کنید محمد جواد بوستانی شاعر روشندل یا با شناسه کاربری ادساین MJ بوستانی P-O-O-S-T-A-N-I Email Y-A-L-D-A-T-A-R-A-Z-Y-A-L d a ات g a i l c o m از یلدا gmail.com